بر عجز دشمن رحمت مکن که اگر قادر شود بر تو نبخشاید. دشمن بینی ناتوان لاف از بروت خود مزن مغزی است در هر استخوان مردی است در هر پیغه